كتب باشترين هاوري خويدناوي كتبو قران بنيو حكمتاكاني نوسيندا كتبي چشدين مجاور نوسيني هجار مقرياني خويدناوي عميد علي گمار کردنی دلیر سلیم. گیرانی عزیز خوشبیست جوانترین سلطان لابشی نوتو سیو کتایی خنوی کتیبی چشتی مجوری حجاری مکریانی حاتین خدمتان فرمون بو باشش لگل من دابن. هجاری مکریانی دنو سه شویک که که منی شعرم میوان بو لنو قسنده گوتم که که منو تو پیر بوین رنگ بردا و بردو جیانی چیامن لطاقت دا نما بی حسد کم تو لاندام افتخار حزب واز بینیو بچی لما لخوت عدبیاتی کردی بنو سه همو کس حرمت د دګری قبول نکرد کړ دای دګل غنی بلوری و سراجي او چنده کتر لحزب جيبونه او برجن حزب کوت نو چند من چن روزګ لچیاګل پاری دا یو ها ته ولاګوند په پرې پرېشاني هم ترس لحزب دیموکرات هم ترس لا دولت اخري 4 ناچار ها ته مهبود خو دا د 10 دولتو بر ديانوري گوواری سروي بودنو چوارجمارو و نوسیو سرانجام لبستونو یکی سالی 1365 کدبیتا 8 اپریلی 1986 زینی با سکت قلبی مردو بردیان و محابد نشدیان براستی به مرگیه من خمزور با تنیا هزدکم با دا خواهشتامن ما هم لنبینه دا کلاورمی بو جگه به های تلفونی چنجار کشلاورمی دیتماوا د مې بریک بغ سکان مدمو با بده مو سردو حوالی 30 فنګ درکه کبرتی بنلا قزلجیو زبیحی او هجار لو سردماندا کامل مصطفا لروسیه او ګرابو بغداد قزلجی سرو کلی پیدا بووا دوی ګرنوي ل تارن ماوي دو سال له حلبجه احمد نوشتنوسی کړدو ریشی هاش توتو نانو دوی تکی خوردو حتی بغداد ملا مصطفا بردي لاي قربدستاني دولت دستبربو کمپیا و عراقيه ترسي نما او شوک باسم کرد اکاسيده کردو عربي بو راديو دنوسي ل سال 1961 د برزاني دغل قاسم تي ګيرنو شرحل ګيرسه قزليجي زور د ترسه كه هرچونکه برزاني او بي دولت نه سندوه بي ګرن منشتاز له موسکو ګرابو موا حزب کومونیست عراق ب منو قزلی جیان اگر کاگرپتن خوشبیل المان د د مزرینو دکرینه ما موستال د من قبولم نکرد وتم اگر له المان با مو بارزانی له دولت حل موا با و لو یو د هاتموا قزلی جی قبولی کردو ناردین بل ام له باچی المان بلغاریا و تاری دی د کر د دا کوردی کریم حسامی تزجیل یان د لسر رادیو پایک یاران له المانی روجلاته او د خوند را یو د مګبور رادیو کنه مابو هیڅ خبرمن الا قزلجین ابو لپر سرو کلی له پیدا بو کپاش سرکوتنی انقلاب اسلامی د احسان تبری حت بووه لسر روجنامه مردمی تو د دمزره با شکردی اکی بودنوسین جارجار جر دهد لکراج سری ددام. چند روش اک پیک و ده جیعین ادریس و تلفونی خوی ندامه. حزب تو ده کرده بو یک کاندیده بوکن لانتخابات ده. لوی سر نکوته بو تا لپر خبر هد که هرکی دنکجوی اکی تو دهی خوارده و گیره و. بیست که قزلجی دگل علی گلاویش گیره تا لر روشی بستوحوتی سپتمبری سال هزار و بیستمان که لزندانی اوینده وفاتی کرد وو تنانت نمانزانی قبر کشی لکویا زبیحی وگباز کرا ریگی درک و دیوانی با کرایا و گیشت راده که هاتو چوی قصر جمهوری دا کرد جارگ نمزانی چون بو بیاسر و بو دو سال خبرم نزانی لپرهات و سر دنیا و گوتی لما لگ دا حبسیان کرد بو دیسان و قدر کوتوا بختيار کسروکي امني ايران بو لدجي شاشو بو درو ليوه هاتبو بغدا زبيحي کرابو و وكيل دولتو يريدي بختيار ک بختيارش د فيكي شاي ايران کجره ديسان هر هاتو چوي جني بختياري دکردو کاری له دولت بو پيک دنن روژ یک باني و گالتو گتم او بختيار فقيرت شون با کجدا تو بو هاشاي کړ گتم ک ک تو دت گوت هر کس د و بيته لای بختيار تا من قولی لسرنکی شمون نالیم باشا قبولی ناکا. دیسان چون ماشه نوسو خدمتکاری بردستی قبول کرا بون که هر اوانیش سواکی بونو لدشت بختیاریان کشت. من لشورشو او لبغدا خبر من لیک نما. پاش شکانی شورشو حتن من, من بدیوی اراندو. پاش انقلابی اسلامی و شاروخان گوتیان زبیحی حتوت محباد شیخ ازدینی دیتو. روژ یک با تلفون قسیدګل کردم گوتی نه زانم چونت ببینم گفتم اگر نه توانی به کرج رکا. و را شهر وګرکه پاش ما بغداد و تلفونی کرد حالی پرسیم سیم گفتم او امه تو چوه هل بز هل بز د ل چی بو فرنګ ک چاپ زستانه چاپی دکم غوتیان هاتوه تلای برای شیخ ازدین شیخ جلال لرگا دیموکرات گرتویانو یانو چکو پاریان لګرتو ام بریان ایتر ناوی نما پاشن و تین لعراق باسی کشتو یانه اویش زور اصح نبو تا خبری اصح دست کود که هاتو بو ایرانو لا نزیگ توریز گیراوا ایتر لو ساوا اویش وک وفای آخری خیر بی دم یکا بیسرو شوینا لسیت فنگ جاری هر من ماوم ما کوا چون بزانین من چون شرطو گوم دبم خواه ایزانی محوی شعیر دفرموی بجه ماوم ما لیاران نا بجه ماوم ما اجل زوبا بمردن لم قصوری جينا استعفان کم تب کم شعری ک عربی بر ل اسلام جداله ببیر من مردن کوره کدز دکته اگر کسی وبرنهات برنهد تازور پیر نبینمراه لمشی است و شش حاصلی تمنم اگر بباری آسایده لیک دموا رنگ دبوای سجار ب مردمه آوانی ب من دالی نسی و من لم خواندون لو گوندانی لیانجی اون لو سفرانی کردو منو لو حمو بلایانی بسرماتون هزاران کس مناسیون کا استا دپرسم تا قوا زک نبه نماونو حموین مردون کچی وامن هر ماو مو به درد شیخ رضا گوتی سگ مرگم گیان سخت بل جگله دو تفنگداری ستن رفیق رگم دنیا بجهشت و خوم لا بر دو حلموت حل بر سیاتی زو مکی شاو بنا خوشی سیل و دیقو چندین خوشی بوم. ستان جر ګله ټاپو بومبم بسرداحت و ستان خطریتر توجبوم بومو استاشر معوم جا چون نلم مرګو ارو پل دکټي با بزنین کی امجیانه گواویا دبرت و هجر مکر یانی لا دواسات نو سینوی بسراتکان جانیدا دچته سر بشگی تایبت بناوی منو او د ل عمرم دا بو یکم جار امناوم ل پش کی کردی عراقی بیز و تی ل شاری کرچ قطر کمان هندک ما و تملک ویا و تی چهل کیلومتر ل تران دوره و غربی تران یان شرق وتی تی ل شرق وجب اسکر ل پش کانی شورش هات متران ل خانوی خنویک شیر خورشید او سان هلال احمری استان بوده نشان کردموچومتی چومتی کاریکم ل پجوشی ایران زمین فعالیت های فرهنگی در آیا لسر پیشنیاری دکتور فرهوشی سی روش دچو متارانو سی روش با ترجمه قانونی ابن سینا و سرگرنبوم جزمی اکم سال 1357 شمسی لدانشگاه چاب کرا جاری سروش دنبسروشو تایستا سیجار چاب کرا و ایتر ترجمه قانونیش هربو با ارکی اداری فعالیت های فرهنگی جزمی دوهمیش چاپ چابو تجدید چاب کرا. جزمی سی همی وایستا لسرطه سالی سالی سوشتا و حودا سالو نیوکه لچاب در نچوا. اندالین که اغز من نیه جانه زنم با جزمی چوارمو پینجمو ششم کم انطاعو ترجمم کردون چون بی یا عمر. فرهنگ فارسی فرسی با نوسی به خطی لاتینی باوی ایران. لپاشن گویتین فرهنگی کردی به فارسی بنوسه نوسی. ماوی چوار سالیک دگلین من دوبوم. فرهنگی کم نوسیوا پتر لپن جاوپین 1000 و شی کردیاو ل آخریان دا فارسی کم نوسیوا. آویشوال سر تاق دند راو سروج دلچابید کامو من بروام نکردوا. تاریخی اردلانم لشن تاریخی به فارسی نوستاو کردوا تکردهاو آویش چاپ نکرداو. وقت باسیشم کرد دختری به عربی بنوی تاریخی و روابطی فرانچی ایران و مصرام ل عربیا و کرده فارسیو و نکرداونو هروابیکز منوا. تنانات روابط فرهنگی یکم هر زیراکسی شم دست نکوتوا. لکته بی آثار البلاد و اخبار العباد تألیف محمد محمود القزوینی کا جغرافی تاریخ لا لازمانی آخر خلیف عباسی دا نصرایا هرچی در بار ایران بوا کردومت فارسیو اویش لبر بیا کاغذی چاپ نکری. چواری نکانی حکیم عمر خیام، 25م لیکردونه کوردی هل لسركی ش فارسیه کا جاریگ لا عراق لا چاپخانی شورش لا چیا چاپ میکرد لو دمول ایران لنان سیدیانی مهبادی کا قدیم با ابن الشیطان مشهور بو دو جران به پرسیمن چاپ کراوه دو جاریش لسنه هر پرسیمن لا چاپ بلاو کراوه تو بلام دولت اجازه به خو نه داوه چاپی بکموه لسالی 1986 توو نخوش کوتم کاو تبیرم کبوچی تا ماوم کاری دگل مموزینی خانی نکم چور نسخه لیک جای چاپیم هبوکه حمزه سال 1919 ل استنبولو سیدا رودینکو ل سال 1962 ل لنینګرادو بوز ارسلان سال 1968 ل استنبول بلاتینیو مامگی ول هولیر چاپ کړدبو ل بر یکمره نوځهی راست راستم له نو سیناو خیال کرد کډ د گل مموزینه ترجمه مکریا نه کی خوم دا ل چاپ یم بده بلم ته استه بو من لووا باب زنین همون دوسرے وکنم چاپ کرا او چاپ نکراو او یتا سال 1918 او حوت نو سی بوتی بنوسم یکم نوسی راون، آلکوک، کاملا شعرکی زمانی کاملا جیکف لطوریز سال 1945 للاین غوابط فرنگی ارانو شروعی لطوریز چپ کراو با ازاریو ارمنیو هندی که با ترجمه کراو. دوام، بیتی سرمرو لسایی سگو منگشو کاملا شعرکی هزار بیتی لشام با قاچاغ چپ کراو. سیم، مموزین خانی با مکریانی سالی 1960، ل بغداد چاپ کرا و سال 1955 هتاوی 1979 زینی اوف سید کرا و چوار نو سراوی دکتور علی شریعتي له و کردو مکردیو له تاران چاپ کرا چوارم یک لاپنه خالو صفری ببرانوا برانوا نو سراوی پنجم عریبرا و رابرا ششم الفان برابری ازادی حوتم دایا باو کیخرا و هشتم تاریخ سلیمانیا عربی و بو فارسی چاپ نکراوه. نویم روابطی فرهنگی ایران و مصر لعربی و بو فارسی چاپ نکراوه. دیم هوزی لبیرکراوی گوان لعربی و بو کردی سالی هزار و نسو هفتاوسی لبغدا لسر ارکی کور زنیاری چپ کراوه. یانزیم شرفنامه با کوردی کور زنیاری سالی 1973 و نسو هفتاوسی نوشینی دوان دیوانی ملاجزی جزیری بشر حواسالی سالی سیاست هتاوی شخصی که تابی کادکات هزار نصو هشت و دوی زینی لتران لچابخانی سروش چابکرآوا سیانزا فرهنگی فارسی به کوردی بلاتینی چاپ نکرآوا چوارده فرهنگی کوردی به کوردی چاپ نکرآوا پانزا تاریخی اردلان لفارسی و به کوردی چاپ نکرآوا شانزا آثار البیاد و اخبار العباد لعربیه و به فارسی چاپ نکرآوا حده ناملکی یک بناوی پنج انگشت دنبال یک مصد لفارسی و بوکری با بو مندلانه دوچر هزاروسیا صاوپنجونو هزاروسیا صاوشستو دویه تایی کدکات هزارنو صاو هشتاو هزارنو صاو هشتاو سی زایی منال و رهنانی هر شو بیم منالو 18 عمر خیام با کوردی لشورش چاپ کرا او لایران به زیمنه و 4 جار چاپ کرا وته نوزده با کردستان هزار دیوان شعر لعراق دو جار چاپ کرا او لایران تزدید کراو وته بیست قانون در طب ترجمه ل ابو علی سینا و به فارسی جزم یکم کتا استا سی جار چاپ کرا و قانون در طب ترجمه لابو ابو علی سینا به فارسی جزمی دوهم که دو هم جار چاپ کراوه جزم جزمی جزم چوارم جزمی پنجم و جزمی ششم لا در طب که هشت چاب چاپ نکراون ماموزین خانی اصلکی به مناکرد نو و شگرانه کانو اصلاحا مشکلکان یوا النسخه کی درست دا زور مقالات و شعر لزور زور روزنامه و گوارنده چاپ کراونو که لوانه دکریه بلیم لروجنامکان خباد، کردستانی زمانی قاضی، کردستانی برای خباد، مجلی حلالا گووار روناهی لبغدا، هیوی روجنامه عمر جلال کواب زنم چرای کرد بو، کمسه ملسکی برابدا گوواری لتیراتور ایجیزن که بناوی هیتر چاب کرا، نوسری کردیو زوری ترش که استا لە نباون، لسروش دا مقالک میا، لپیا شنګیږده هر وا هر هرو وکه او توېږي چې شم د خپل پیښنګ او چاپ کړو لا اخره اوخري 1986 دگل معصوم چوینه پاریس بوینمیوانی نيواني رسول ابرام کيستاجن کې ایراني کور کې چوار 4 سالان بنوي سفری اکو سفر پاریسم بوې خوشبو کډګل انستيتيوي کردی پاریسو که کندالی مدیریت بو معاشنه روزنه هاتو چوي او شینه پیروزم د کړ او شینه له که کندال ده مزره. یلمازگونه بر یاریده و که هرچی دهاتی فیلی مکانیتی لوی خرز بکه. کندالیش که یکی کل زنایانی فیزیکی مشهور همو هزی خوی لو باروه صرف بکه. بلانده خیگرانم مردن موده پیانده و جوانم رک بوا. شوینکه چاکترین جدی پاریس واتا لافایت ده مزره و به هزاران کتب بلاوک افلامی ویدیو کاسیتی ورگیر راو لحمو به بته کانی سرب کردستانی که داکوکر و توآ دولة فرانسه سوئیالیست زور یارم تی آوشنی داد. جیگل سالانه 800 هزار فرانک یرمتی تی کرد دوی بالامدواي آوا دیگولیه دست راستی کن هتونه سرکار پشت دیدار کی وزیری در وی ترکیه اوکومهخیان برآوا که براو. هتونه تابیا پولیو دستنگی میلیونی ریکورد ل اروپا و شونیتر یک جار زورن بلام کورد فیر او اوو نبوء کسر خوئی بوشتانه و بی شینه یار متی ناکن هرچون چونک بیت چاکترین جهگی کوکردنو راگرتنی کلټوری کورد لوښنه یا لسای هاتو چون بو نو او مرکز گرینگا د زور کوردی دلسوزی فداکار بو ما اشنه به تایبتی و شوقی تیمور زوری ترش بر لوبرم بو پاریز مموزینه اصل یکی خانیم به معنا تایب ده نسخه کم نشان کک ادریس برزنیده خوند بویاوه قراریده لا اوروبا چا بکری نامه کی بو ماموستا پیروت لوینردوک تی بکشی بونارد ک بزترین کاد هر نرخی به به چاپی بگینی پاش 17 روز توانیم تو نیم تلفونی پیروت ورگرم قرار درا پیکو حولی ل چاپدانی بدهین بهای ک کندال کوت مپرس ور و گوت یان جورجوان چا بکری 240000 تی اتی کلی کم دایوه با پول ایران دای کرده سی ملیون و اونده تمن دمزانی او پولا با ادریس هل ناسوره کندالوطی ایمه ماشینکی چاپی کامپیوتر دا کرین با حوت هزار دولار مجغولی دبین بلام جاره پول نیا وقتی هات موکراج با ادریس گود با او حوت هزار دولاره ترتیب کین گودی شرطه اگر حزبیش موافقت نکا من خوام ترتیب دکم بلام دو دوای دوائی و تویجا ادریس با سکته قلبی مردو ریسکم بواوا بخوری لو سروبنده دا که لپاریز بوم کوبونوی لگرانی انستیتیو بو که لهمو لیکی اوروپاو بین زور کس لبرویزا دستنکوتن نهاتن لسوید و چندکاتنو لالمانو شوینی تری شو حات بون لکوبونوکان دا شرکتم دا کرد روشی دوائی گوتین بر یروابو دکتر اسمت شریف واندلی رئیس جلسه بی نخوش و نت کوابی با هجار ام ریاست جلسه وعوده بگریو قصه خلازبونی کوابونه و اوبیکا لجلسه تاینده منزور براشکاوی تیرم گلو گازن لکورد کرد که باب او همو حزب حزب چیه هتانه امی کورد لهمو لوا بر پلمار دروین که خری کن توخمو تومان ببرنوو با دردی سورپیستکان امریکا بچین او همو حزبه که هموش دجی یکتره با جران دمان گود شیخ و آغا لیه نگرین ازاد بین استا حزبکان لشیخ و آغا خرابترونو زورتریشن وک خلقی قرابراز من لیهاتوا با دوازده آغا رأی کن هبو وقت ناوی حزبکان لهمو کرد زیاتر بی با, با پیوی پیاوی چاک بین اما و رود لدشتیک لبر برانو بفرماوین جاری با پنایک درست کین سرما نمان با اوسا لسر رنکردنوی سور بی یا شین و زرد بی شرد خلاصه زورم همولاک شیلا لالاین راجنامی کردوستان پریسو فرهاد شکلی شوا چنو تویه جاکم کرا هرچند ادریس سپرده بوی که پیروت لخرجی دایاری دم بدا بلام اوی رازد به اگر دکتر عزیزی فیز نجاد للمان و یرمتی ندابم لاموای رازیل دبم، خواه جزای بخیری بداتاو که همی عزیزیش ها چن روز یک میوان من بو با دیداری زورشاد و شکر بو موا. لو سفرە 50 ڕۆژم پێچو لە تنمالە لە پاریس داوت کراین مالی نازیه خانم خوشگکان دڵ نازیه خانمی شافعی کمالی داودی چنجاری کیش نانم لە مطعامیی کوردیک کرمانجی خوارد کە جنی ژنێکی محبادی بوو دوستانو و هاگرانی دنیا پرزانست و حکمتی کتیب لیرده حتی نا کوتای خویند کتیبی چشتی مجوری حجاری مکریانی هیوادارین که جگه سود و رزامندی همو لیکتن بو بی تا بو کتیبی کتیرو لبرنامه کتیب باشترین هاوری دا پیتن نوا خوشویستی و بختواری هاوری همیشهی تن بی.